اندوه را پایان نیست مردمان باز می گردند، ویرانه ها ساخته می شود و ساخته ها از مردمان پر، بمان و نیک بخت شد. فصل سوم پادکست علف به تمام انسانهای آزادی که بی تفاوت نبودند و برای هم نوعان خود مبارزه کردند و جان پاک خود را از دست دادند تقدیم می شود، سلام، شما قسمت سوم از فصل سوم پادکست الف رو میشنوید هر قسمت از این پادکست روایتی از یک نمایش نام است این قسمت قرار بود مهر ماه 1401 منتشر بشه ولی به دلیل اتفاقاتی که برای مردم ایران در شهری ماه افتاد پخش این قسمت ابتدا یک ماه و بعد تا مدت نامشخصی به تعویق افتاد. هیچ چیزی شبیه قبل از شهریور 1401 نخواهد شد. همه اینو میدونن چه کسایی که با مردم همسو هستند و چه کسایی که مقابل اونهای ایستادند اما به هر ترتیب زندگی جریان داره و باید ادامه داد. آموزش و رشد ذهنی اتفاقا در این زمانهی که ما توش عمرمون داریم اگذره اهمیت ای پیدا کرده. چون آمادگی برای تغییر و آمادگی برای دگرگون شدن خودش یکی از قدم مهم تغییرات بزرگتره. تو این قسمت از پادکست سالف نمایشنامی آبنگ خاطره های ما اثر عباس معروفی رو براتون روایت میکنیم عباس معروفی رمان نویس، داموش نام نویس، روزنامه نگار و شاعر اهل تهران متولد 127 اردیبهشت 1336 است. با اینکه خانواده معروفی وضع مالی مناسبی داشتن ولی اون هم زمان با درس کاره مختلفی انجام میداد ولی این کار کردن باعث شد که علاقش رو به ادبیات کنار بذاره. وقتی 14-15 سالش بود داستان های چخف رو کپی می کرد و با تغییر نام و شهرها و ازن قصه داستان تازهی می ساخت. سال 1354 وقتی 18 سالش بود با محمد محمد علی نویسنده معاصر آشنا شد. این آشنایی باعث شد معروفی اولین داستانش رو سال 1355 تو مسابقه داستان نویسی جوانان کیهان، به عنوان برنده نخست چاپ کنه در واقع یعنی مجله داستان معروفی رو به عنوان برنده نخست یه مسابقه داستان نویسی چاپ کرد بعد از اون بود که با جدیت بیشتری داستان نویسی رو دنبال کرد معروفی دیپلم ریاضی گرفت اما در رشته ادبیات دراماتیک دانشگاهی هنرهای زیبای تهران به تحصیل دانشگاهی مشغول شد سال 58 با هوشنگ گلشیری، و محمد علی سپانلو آشنا شد و کمی بدتر به عضویت کانون نویسندگان ایران در اومد. اولین داستانش و تحت عنوان روبروی آفتاب در سال 1359 با تیراج ده هزار نسخه چاپ کرد که خیلی زود کمیاب شد. سال 1360 ساختمان کانون نویسندگان ایران توسط دادستانی انقلاب پلم شد، اما عباس معروفی در همراهی با احمد شاملو، هوشنگ گلشیری، محمد محمد علی محمد مختاری و باغر پرهام پلممپ رو شکستند و اسناد کانون رو جابجا جا کردند. سال 1362 اولین رمانش رو به نام زوب شده نوشت اما خب چاپ نشد. سال 63 نوشتن رمان سمفونی مردگان رو شروع کرد و 5 سال صرف نوشتن این رمان کرد. در این پنج سال نما زیادی مثل ورگ، دلیبای و آهو و تا کجا بامنی رو نوشت. سمفونی مردگان با تیراژ یازده هزار نسخه به سرعت به فروش رفت و باعث معروفیت عباس معروفی در جامعه ادبی اون سال شد. معروفی تو این سالها علاوه سال علاوه بر نوشتن کتاب یازده سال معلم ادبیات دبیرستان هم بود. معروفی سال 1369 نشریه فرهنگی ادبی گردون رو تأسیس کرد که تا سال 74 به کار خودش ادامه داد تا اینکه به دلیل فشارهای وارده توقیف شد و عباس معروفی را از هر گونه فعالیت و هنری منع کردند. به خاطر این توقیف و کاری معروفی به آلمان مهاجرت می‌کند. در سال 1382 به یاد صادق هدایت کتاب فروشی به نام خانه هنر و ادبیات هدایت در برلین افتتاح میکنه و علاوه بر, بر برگزاری کلاس های نویسندگی با راه اندازی دوباره نشریه گردون کتاب های نویسندگان خارج از ایران رو منتشر میکنه. معروفی بنیانگذار سه جایزه ادبی قلم زرین گردون، قلم زرین زمانه و تیرگان هم هست. قبل از مهاجرت در سال 1671 سال بلوار رو منتشر کرد. بعد از مهاجرت ده سالی کتاب منتشر نکرد تا سال 81 پیکر فرهاد رو نوشت. یک سال بعد کتاب معروف دیگرش به نام فریدون سپسر داشت منتشر شد. سال 88 رمان زوب شده همون اولین رومانی که گفتیم معروفی نوشت بعد از 26 سال که توی ایران چاپ نشد توی آلمان به چاپ رسید سال 89 رمان تماما مخصوص چاپ شد که تقریبا زندگی نامی خود معروفیه و نام تمام مردگان یحیاس به عنوان آخرین کتاب معروفی تو سال 97 به چاپ رسید زبان معروفی زبان مردم بود و به علت سختی هایی که در زندگیش تحمل کرد داستان های تراجیک و در اون مایه های اجتماعی نوشته معروفی آدم هایی رو انتخاب میکرد که در هر دورهی وجود دارند و به نوعی قربانی جامعه هستند این تلخ بودن روایت معروفی باعث میشه که بیشتر به خودمون بیایم و انسان های اطرافمون رو بهتر ببینیم و برای ای بهتر تلاش کنیم عباسه معروفی در روایت داستان سبک خودش رو داشت و همین خاطر آشنا شدن با قلم معروفی نیاز به صبر در مطالعه داره. معروفی توصیف دقیقی از شخصیت ها داره و داستان رو جوری تعریف میکنه که افکار و خاطرات مختلف رو نمایان میکنه. فلش که در وسط این روایت به گذشته میزنه و به زبان تنز و تمسخرآمیزی در جامعه صحبت میکنه اینها نکات متفاوت قلم معروفی هستند که باعث زیبایی و تاثیرگذاری بیشترش توی ذهن مخاطب میشه آثار ابباس معروفی به واسطه ترجمه به زبان مختلف نقش مهمی در شناخت ادبیات فارسی ادبیات حداقل معاصر فارسی در جهان داشته و جوایز بین المللی زیادی رو هم به دست آورده برای مثال هلمن هامت اولین جایزه‌ای بود که در سال 1996 به صورت مشترک با هوشنگ گلشیری به دست آورد. سال 2001 به خاطر رمان سمفونی مردگان جایزه بنیاد ادبی فلسفی سورکامپ رو کسب کرد. معروفی در حوزه غیر از ادبیات هم برنده جایزه شده. سال 1996 اتحادیه روزنامه نگاران کانادا جایزه روزنامه نگار آزاد رو به عباس معروفی اهدا کردند. سال 1399 شهری بر ما عباس معروفی خبری رو منتشر کرد که دل تمام دوستاران ادبیات فارسی رو به درد آورد عباس معروفی مبتلا به سرطان قدد لمفاوی شده بود و در نهایت دو سال بعد سال 1401 چند ماه پیش هنوز یک سال هم نشده در سن 65 سالگی در آلمان درگذشت یادش گرامی و هنرش جاودان. خیلی خوشحالیم که بعد از چند ماه ما رو با اثر این نویسنده مهم و عزیز میشنوید امیدوارم که حاصل زحمت من و همکارانم رو در این قسمت دوست داشته باشید متن این نمایشنامه زمانی نوشته شد که عباس معروفی زنده بودند بعد که خبر مرگشون بهمون به رسید متن رو تو اولویت قرار دادیم که زودتر منتشر کنیم و یادشون رو هم گرامی بداریم تا اینکه به شهریور ماه 1401 خورد و اپیزودی که قرار بود اون ماه منتشر کنیم کنسل شد و تا همین امروز عقب افتاده به هر ترتیب من خیلی خوشحالم که تونستیم دوباره برگردیم، دوباره سرپا بشیم و دوباره توسط شما شنیده بشیم متن این قسمت رو محمد امین سراب نوشته و تدوین اپیزود رو سینا سعدی انجام داده نمایشنامی این قسمت در کنار دلیبای آهو و ورگ بعد از سالها در یک کتاب به چاپ رسیدند و تجدید چاپ هم نشد این نمایشنامه چه متن و چه اجراش توقیف شدن ولی خب منبع ما برای نوشتن متن این قسمت همون نسخه هستش که در کنار اون دو تا نمایشنامه دیگه چاپ شد اسم اون کتاب اینه آونگ خاطره های ما و دو نمایشنامه دیگر البته فکر نمی‌کنم دیگه الان بتونید نسخه فیزیکی از اون گیر بیارید مگر اینکه مثلا دست دوم باشه به هر حال عباس معروفی در مقدمه این کتاب نوشته نمایشنامه آونگ خاطره های ما سالها پیش در ایران برای چاپ آماده شد اما توفیق انتشار نیافت و نیز در سال 1374 قرار بود کارگردان خوب تئاتر حسین عاطفی آن را اجرا کند که پس از چهار ماه تمرین همراه با جلال اجلالی توفیقی به دست نیاورد ابتدا نام اصلی اثر و خدا را آفرید بود که به اجبار تغییر یافت و سپس اجرای آن من شد ها طول کشید و بر همه ما ماجراها گذشت که وسوش طولانی نیست بگذریم توضیحات خود عباس معروفی به نظرم در مورد وضعیتی که این نمایشنامه داشته کافیه و و هر چیز اضافه ای که بگیم تکراریه ببخشید اگر این اپیزود مثل اپیزودهای قبلیش نباشه کیفیت لازم رو نداشته باشه یه مدت از فضای کار دور بودیم تا دوباره به روال سابق برگردیم یه مقداری پس با گوش های خطافوشتون خطاهای من رو در این قسمت ببخشید اگر علف رو دوست دارید و میخواید از اون حمایت کنید بهترین کار معرفی و به اشتراک گذاری اون با دوستانتونه بریم سراغ قسمت 23 پادکست علف آونگ خاطره ما اثر عباس معروفی صحنه نمایش یه مغازه ساعت سازیه، ساعت های جرواجوری روی دیواره، یه ساعت لنگری روی دیوار سمت چپ جلوه بیشتری داره. ویترین پر از ساعت و در ورودی کنار ویترینه، از خیابون صدای تظاهرات میاد و صدای تند شعار جمعیت به گوش میرسه که به مرور رد میشن، گاهی هم صدای یه سازه بادی میاد مرد ساعت ساز روی چارپایش به سمت خیابون نشسته و محو تماشای تظاهر کننده ها با ریتم اونا پا میکوبه تو همین لحظه مرد خوش تیپ و مرتبی با ساک وارد مغازه میشه کنار دیوار پناه میگیره تا تظاهر کننده ها بشن بعدش دوری توی مغازه میزن و به ساعت ساز نگاه میکنه و جلوی پیشخانش می است. آقا ساعت ساز یه دفعه به خودش میاد و میگه بفرمایید امری داشتین؟ حواس ساعت ساز هنوز به بیرون از مغاز است. مرد میگه منو یادتون میاد؟ ساعت ساز با تعجب نگاهش میکنه و میگه شاید ولی نه اصلا به جا نمیارم. چطور به جا نمیارین؟ من بعضی وقتا از اینجا رد میشم و میبینم دارین یه ساعت رو تعمیر میکنید و لایه چرختنده هاش دنبال یه لغم نونینی. ساعت ساز میپرسه میتونم بدونم شما کی هستین؟ مرد با لبخندی مهربون میگه من منم. ساعت ساز با خنده میگه آخه بعضی خودشون نیستن. پس کی هستن؟ ساعت ساز میگه خودشونم نمیدونن. خیال میکنن خودشونن اما وقتی خوب فکر میکنن میبینن اشتباه کردن. حالا شما کی هستین؟ مرد میگه که چی بگم قربون؟ چند سال پیش یه روز که چندی که ابر تو آسمون بود و نسیمی میوزید شما ساعت منو تعمیر کردی. یه ساعت قاب نقره‌ای سوئیسی. یادتون هست؟ ساعت ساز به فکر میره و میگه من حافظه درخشانی ندارم. هزار نفر به اینجا اومدن و رفتن. همه چیزا یادم نمیمونه. مرد میگه اون ساعت سالها همدم و همراه هم بود. تا اینکه توی زد و خورد دوستانه از بین رفت چقدر دوستش داشتم زیر دست پا خورد شد شیشه شکست و باهاش گم شد ولی هنوز کار میکرد عیبش این بود که آدم نمیفهمید چقدر گذشته ساعتساز میگه که چه ساعتی بود مرد میگه فکر کنم ظهر بود منظورم اینه که جیبی بود یا مچی ساعت زنجیردار جیبی بود الان داریش؟ نه همراه هم نیست اگه همراهتون بود. جوری درستش می کردم. بشه بهش مثل روز اولش آ آفتاب خررج لحیم یه بار فکر کردم خورده جمع کنم بیارم تعمیرش کنید بعد دیدم نه ارزششو نداره یادگاری بود آره یادگاری پدر بزرگم بود که چه قدم دوستش داشتم چقدر بهش فکر کردم میدونید هنوزم شبا خوابش رو عجیبه ساعت ساز میگه که توی ویترینو نگاه کنید شاید مشابهش باشه مرد که تو فکر فرو رفته به خودش میاد و میگه که مشابه پدر من توی ویترین چقدر جالب میشد اگه میشد پدر رو توی ویترین پیدا کرد ساعت ساز خجالت زده میگه که متاسفم خیال میکردم ساعت رو میگین آخه پدر گایی به ساعتهای خیلی قدیمی شبیهن سر و صدا دقیق و ظریف اگه بهشون نرسی میخوابن و ممکنه هیچ وقت از خواب بیدار نشن. مرد به یه ساعت اشاره میکنه. اون ساعت تلاس، ساعتساز جواب میده که بله تلاس سویسیه. مرد که خیره به ساعتها شده میگه که بعضیا ها جوری نمیشه از رو ظاهرشون قضاوت کرد. ظریف بی سر و صدا و عصیل. جوری که در میشه گفت شرف المکان بلمکین. ساعتساز میگه مثل پدر بزرگ من، پدر بزرگ شما؟ خیال کردم داری راجع به پدر بزرگا حرف میزنیم ببخشید یه ساعت بغلی زنجیردار بر میداره و به مرد میگه که ساعتی که از بین رف رفت شبیه این بود مرد میگه اصلا یادتون نیست؟ زنجیرش سیلور بود با حلقه های درشت قاب نقرهی داشت که روش کند کاری شده بود با نقشای برجسته چند اسب و چند سوار نگزه به دست یه جنگ بزرگ. اون سربازا، اون دود بارود، اون عرابه ها، اون جسدا ساعت ساز که محو صحبت های مرد شده میگه عجب. مرد ادامه میده. بله، اددهی فریاد میزدن، اددهی فرار می‌کردند و وسط اجساد حیرون بودن. کسی به داد کسی نمیرسید. دود همه جا رو گرفته بود و خون کشته ها پاشیده بود به چرخ عرابه ها. توجه دارین که ساعت ساعتساز میگه بله حواسم به شماست. مرد میگه چه نظمی، چه دقتی، چه آرایشی. مرد خیره به ویترین شده. ساعت ساعتساز میپرسه سربازا رو میگین. مرد میگه نه نه مرحبا به این سلیقه واقعا آدم حزم میکنه. کچیکترها جلو، متوسطها وسط، بزرگترها عقب تکا همیشه تکند. کاش اینا مال من بودن آدم اگه روزی هزار بارم تماشا کنه سیر نمیشه اگه مال من بودن مدام باهاشون برمیرفتم طلاهای اینور بر، اون بر، بغه‌مون طرف ببینم خطری نداره این طلاها رو پشت ویترین ساعت ساز میگه که پس من اینجا چیکارم مرد با خوشحالی میگه آدم نگرانتون میشه ولی وضع درخشانی دارین ساعت ساز میگه اونجوری هم که شما میگی نیست می تو این لحظه صدای نامعلوم یه شعار از تظاهر کنندگان به گوش میرسه. ساعتساز به ریتمی که گاه گاه صدای ساز بادی بهش جان میده، توجه میکنه و لبخند میزنه. ساعت ساعتساز در حال چرخوندن زنجیر یه ساعت دیگه میگه میبینین شهر شلوخ شده. اما حالی نداره. این شلوغی گرمایی نداره. مرد میگه من حتی فکر میکنم سرده به خصوص شبا که از سرما آدم مرمورش میشه سرما میره زیر پوستت ساعتساز میگه این تنها چیزیه که از پدر بزرگم برامونده زنجیری که توی دستش اشاره میکنه یه زنجیر ونیزی که از صبح تا شب همینجور تو دستام میچرخونمش مرد میگه هر کسی از پدر بزرگش یه یادگاری داره ساعت ساز میگه از هر چه بگذاریم سخن دوست خوشتره فکر کنم دومال یه ساعت خاصی مرد میگه بله از کجا فهمیدیم ساعت ساز میگه ما این موها رو تو آسیاب سفید نکردیم بعد به ساعتها اشاره میکنه و میگه که خب انتخاب کنید. مرد میگه م... بله بعد شروع می کنه به قدم زدن بعد میگه که اما میدونین خیره میشه به ساعت ساز ساعت ساز میگه چی می میدونم؟ مرد میگه پس نمیدونیم یه سری کمید و دوباره نگاش میکنه ساعت ساز میگه چرا میدونم ؟ میدونین چرا چون همیشه دونستن بهتر از ندونستنه مرد میخنده و میگه نگفتم میدونم که شما میدونی حالا دیگه سنی ازتون گذشته اون سالا که من به اینجا اومدم و ساعت دادم به شما که تعمیر کنین سینتون رو سپر کردین آقای محترم فرمایشتون چیه بله از ساعه تعمیرش میکنم من یه ساعت ساز کهنه‌کارم ساعت ساز لبخندی به تمام صورتش میاد و میگه یادتون هست واقعا دلخوشیا بیشتر بود اون موقع مرد میگه حالا هم دست کمی از گذشته نداری راستی چند سالتونه ساعتساز میگه که من از همه این ساعتا قدیمیترم. مرد میگه بلا نسبت شما این روزا آدم حسابی کم پیدا میشه به قول مولانا تویی بحر توی لطف توی قهر توی قن توی زهر توی بیش میازار مرا ادده هیاهو کنان در اون لحظه از جلوی مغازه میگذرن و شعارهای نامفهوم سر میدن سازای بادی هیاهو میکنن هر دو مرد لحظاتی به بیرون خیره میشن ساعت ساز با حیجان پا میکوبه و میگه زنده باد زنده باد مرد میگه هیچ چیزی نمیفهمن اما با تمام وجود فریاد میکشند. قبول دارین؟ ساعت ساز میگه ما قطعا به پیروزی و خوشبختی میرسیم مرد میگه خوشبختی تو آسموناست همه اونو میبینن اما دستشون بهش نمیرسه ساعت ساز میگه من نمیبینم چون به هیچ قدرتی وابسته نیستم. مرد میگه حمایت که میشید. ساعت ساز میگه اصلا شما نباید اینجوری راجع به ما قضاوت کنید. خصوصا در مورد حزب. میدونین چرا؟ چون ما هیچ کمکی نمیگیریم. مرد میگه من ذاتن آدم شکاکیم. ساعت ساز میگه که نمیدونم سرچشمه بدبینی شما کجاست. حتما این مسئله معروفو شنیدین که میگه اصل بر براعت است مگر آنکه خلافش ثابت شود مرد میگه اگه حزب چهار تا آدم از شما داشته باشه پیروزی بسیار نزدیکه اما همه که اینجوری نیستن یه مش ادم کودن ریختن جلوی اداره دست گدایی پیش گرفتن و منتظر صدقه دیدین ساعت ساز میگه بله دیدم اما اینا ارتباطی به ما ندارن مرد میگه چرا بجو این حرفا نمیرن به زندگیشون برسن ساعت ساز میگه قص گدایی ندارن به سطوح اومدن مرد میگه چرا به جای این کارا مطالعه نمی کنن؟ ساعت ساز میگه آدم بدی نیستن از زندگی خسته شدن حقشونو میخوان بله این هم حرفیه شما تخصص دارین اعتراض هم بکنی باور بفرمایید من به خاطر حیجانش دست به کارای سیاسی نمیزنم در واقع من یه علاقه من به امور سیاسیم مرد میگه که باور میکنم امروز دیدم اددهی جلوی اداره کشاورزی بست نشستن که بزر مجانی بگیرن. ساعت ساز میگه البته اجتماع کشاورزا ارتباطی با قضایی سیاسی نداره. مرد میگه به نظرم باید در مسائل سیاسی بزر فراوون پاشید. یه چیزی مثل جو یا یونجه. ساعت ساز میگه ما در مسائل سیاسی بزر نمیپاشیم. میدونین چرا؟ چون فایده ای نداره. چیزی سبز نمیشه. مرد میگه منظورم اینه که نباید قاتی کرد ساعت ساز میگه چیو مرد میگه واضح بگم شما وارد سیاست نشین ساعت ساز میگه خودتون چرا در امور سیاسی مرد سری میپره وسط حرفش میگه من من از سیاست متنفرم ولی اگه اراده میکردم میتونستم وکیل مجلس یا حتی وزیر بشم ساعت ساز میگه که من همیشه دلم میخواد توی سرنوشت مملکتم نقش داشته باشم اما هیچ وقت نزاشتن زندگی خیلی سخت شده مردم حق دارن مرد میپرسه چه حقی و ساعت ساز میگه یعنی منظورم اینه که حق با مردمه مرد میگه که حتی حق دارن حق شما رو بخورن ساعت ساز میگه البته که چنین حقی ندارن چنین قصدی هم ندارن حق خودشونو میخوان مرد میگه خیالات نبافید اه در یه جا جایی قدرت ممکنه شما صاحب این مغازه و صاحب همه این عتیقه های و نباشین. از شما میپرسن از کجا آوردی؟ بعد برای قارت میریزن تو مغازه. ساعتساز میگه که بیخود خود؟ مگه شهر هرته؟ مرد میگه از اونم بدتر. زمانی که برای قارت حمله ورشن قانون علیه شماست. حتی حزبتونم داره ذهن شما رو قارت میکنه. از صداقت شما استفاده می و یه باره می بینین که چی تو دستتون نیست می ریزن اینجا و همه چیزو خورد می شما رو زیر مشتلگت می گیرن و رو چپو می کنن و اگه زیادی حرف بزنین می گن مملکت قانون داره برو کنار ببینم اگه خیلی شلوغش کنین یه گولم خالی می کنن تو مغزتونو تمام ساعت ساز میگه شما چه حقی دارین که علیه من تخته می کنین مرد سرخم می کنه و میگه من من حاضرم سرمو در راه شرافت شما بدم. ساعت ساز با لبخند میگه پس چرا میخواین مردم اموال من غارت کنن؟ مرد میگه من چنین چیزی نمیخوام. ساعت ساز میگه پس از کجا میدونین که ممکنه؟ مرد میگه نمیدونم. شاید یه لحظه خودم خودمو جای شما گذاشتم. ببینین روی اون دیوار چی نوشته؟ زمین مال خداست. یعنی چی؟ یعنی ساعت ساز سری میپره تو حرفش و میگه اگه زمین مال خداست اصلا من که دارم توش کشاورزی یا هر کاری می کنم چه کارم چرا کسی بحث مالکیت رو مطرح نمی کنه که کسی افکار و انبال افراد افرادو غارت نکنه چرا هیچ وقت از این صحبت‌ها نمیشه مرد میگه من که دارم همینو عرض می کنم دوست عزیز بحث داره سیاسی و خطرناک میشه ساکشو برمی داره و میگه بهتر برم با اجازهتون ساعت ساز میگه صبر کنی بذار این سر و صداها بخوبه خصوصا شما که اهل سیاست نیستین ممکنه یه وقت آسیب ببینید مرد اهمیتی نمیده و میخواد بره که ساعت ساز باز میگه به حرف یه کهنه سیاسی که نبزش با تیکتاک تاک زمان میتپه گوش کنید به قول معروف در عالم سیاست زخم هایی هست که روح را در انزواه هی می میخورد و هی میتراشد مثل چرختننده های یه ساعت که یکیش خراب باشه میزنه همه رو خراب میکنه. مرد ساکش رو, رو زمین و میگه خیلی نگران هیچ وسیله دفاعی ندارید. ساعت ساز میگه اتفاقا ما علیه همین چیزا مقاومت میکنیم. زیادم نگران ما نباشین. ما می چیزایی داریم بتونیم از خودمون مراقبت کنیم. مرد میگه که من آرامش رو ترجیح میدم. صدای حیاهو و شعار که از دور میاد اوج میگیره و صدای سازای بادی گم میشه. ساعت ساز محو صداها به بیرون توجه میکنه. ساعت ساز میگه که گفت آرامش و من یاد آرامش بعد از طوفان افتادم. مرد میگه شاید براتون جالب باشه من کمال آرامشم. خوشوقتم. ساعت ساز میگه خوشوقتم چه اسم با مرد میگه هر چی فکر می شغل شما فقط با آرامش معنا پیدا میکنه. حالا که به این سن رسیدم میفهمم که بایست ساعت ساز میشدم. ساعت و ساعت سازی و رفتن با ساعت همیشه برام جذاب بوده. بی قرار این بر اونور سرک میکشه و میگه برم با اجازهتون ببینم این دورو ورا آب میوی چیزی پیدا میکنم چون از تشنگی دارم حلاک میشم شما چیزی دارین می شما هم چیزی میل دارین ساعت خم میشه زیر پیشخان برای این مرد آب میریزه بفرمایید یعنی آب اینجا پیدا میشه که شما توی این شلوغی جونتون رو سرش نذارین مرد میگه راستی میفرمایید واقعا خطرناکه ساعت ساز میگه نخوردیم نون گندم ولی دیدیم دست مردم من با این چشمام دیدم که همین جایی بدبخت یا کشته بودن. بعد جسدش سه روز آزگار کنار خیامون افتاده بود و کسی جرات نداشت بره سراغش. یک بار اون سالی قدیم توی انتقام کشی های مذهبی یا تصویر حسابی سیاسی یا آدمی رو که بی موقع شده بود قطع قطعه کردن. 5 دقیقه دیر رسیده بود. فقط 5 دقیقه. مرد میگه داری من رو تهدید میکنین یا می ساعت ساز میگه هیچ کدوم. اینا واقعیت داره میخوام بگم. که من اینجا خیلی چیزا دیدم اون جوون اگه یه ساعت مچی داشت تو دیرتر از موعد نمی رسید الان زنده بود مرد آبرو می نوشه و لیوانو رو روی میز میذاره و میگه بشر درگیر مسائل عجیب و غریبی شده که داری یادش میره در حال حاضر ساعت مهمترین وسیله دنیاست زمان همیشه همراه مالکیت به یغما رفت ساعت ساز میگه منم به چنین مسئله اعتقاد دارم سال‌هاست که ما ساعت سازیم پدرم هم ساعت ساز بود میگه این یه وراثت ما چشممون رو توی ساعت سازی پدرمون باز کردیم مرد میگه پس شما یه دونه از اون ساعت سازای خانوادگی هستید ساعت ساز میگه بله قربان برادرم هم ساعت سازه اما خصوصی بگم آدم ابلهیه از من بزرگتره و با اینکه سن و سالی ازش گذشته و چشاش کم شده صبح تا شب دل و رودهی ساعتها رو بیرون میرزه و با این چرخدنده ها ور میره بهش میگم دنبال چی میگردی مرد میگه شاید دنبال زمان از دست رفتش میگرده ساعتساز میگه جواب میده دنبال یه حلقه مفقودم میدونین از وقتی دخترش رو سر بنیست کردن یهو هم مات و مپود شد رفت توی لاک خودش مثل یک مجسمه ولی در حال تعمیر ساعت مرد میگه چرا دخترش رو سر بنیست کردن ساعت ساز میگه هیچی نمیدونه یه روز گرفت دانشگاه دیگه برنگشت. بعد روزنامه ها نوشتن مرد میگه عجب ببینم برادرتون تال سرنخی چیزی پیدا کرده. ساعت ساز میگه از حلقه مفقوده مرد میگه نه از دخترش که چرا ساعت ساز میگه آها نمیدونم ولی من حوصله ندارم کللا آدم بی حوصله ای شدم. دل و دماغ هیچ کاریو ندارم. مرد میگه پس کی ساعت های با ارز شما میکنه. ساعت ساز میگه خودم یادتون نیست. سالها پیش که شما یه ساعت عتیقه قاب نوغره آوردین که من تعمیرش کنم یادتون نیست که اون موقع روی قابش تصویری جنگ حکاکی شده بود با نقشای برجسته اون عرابه ها اون سربازا اون خونایی که به چرخ خرابه ها پاشیده شده بود بعد به فکر فرو میره مرد میگه جنگ بزرگی که خون به چرخ خرابه ها پاشیده بود ساعت ساز میگه بله مرد میگه من ساعت ساز میگه بله مرد میگه چنین جنگی رو به خاطر ندارم ساعت ساز یکباره به خودش میاد و میگه پس تشریف ببرید مرد میگه کجا ساعت ساز میگه چه میدونم فقط تشریف ببرید مرد میگه من که گفتم باید برم دکمه کتشو میبنده و با ساعت ساز دست میده و از مغازه خارج میشه خدا نگهدار ساعت ساز میگه ابله دیوانه بود بعد یهو یه چشمش به ساک مرد میفته که جا گذاشته ساک رو برمی داره و به دنبال مرد سرش رو از مغازه بیرون میبره آقا آقا آقای عزیز ساک شما جا مونده مرد برمیگرده و میخواد ساک رو برداره میگه حواسم کاملا پرت شده بود داشتم به ساعت قاب نقرم فکر میکردم که روی قابش ساعت ساز میگه جنگ شده بود ساعت ساز و مرد لحظاتی به هم دیگه خیره میشن و بعد میخندن لحظاتی از سرخوشی میخندن و بعد اش به چشماشون میاد در لابلای خنده چیزای نامفهومی میگن و با دست حرفای همدیگه رو تایید و نفی میکنن مرد اشکش رو با دو انگشت پاک میکنه و میگه خوب یادم هست که شما سالها پیش ساعت منو تعمیر کردین ولی حیف ساعت ساز میگه پدربزرگتون مرد میگه بله پدر بزرگم خیلی حیف شد ساعت نازنینی بود ساعت ساز میخنده و میگه آدم مطبوعی هستید مرد میگه شما هم بسیار مهربون و ماهین با گذشتتونم زیاد توفیری نکردین تکون هم نخوردین ساعت ساز میگه لطف دارید اگه بخواین حالا دیگه احساس پیری و خستگی میکنم. مرد میگه نفرمایین اما خستگی خب حق دارین مگه چقدر باید کار کرد. ساعت ساعتساز میگه واقعا حوصله هیچ کاری رو ندارم. با این حال از صبح که اینا رو کوک میکنم و گرد و قبارشون رو میگیرم زندگی من شروع میشه. و تیک تاک تیک تاک. بعد با یک از ساعتهای لنگری اشاره میکنه و میگه مثل این نازنین میبینین؟ مرد به همه ساعتا و بعد به ساعت لنگری نگاه میکنه و میگه واقعا این یکی تماشاییه کاش منم میتونستم ساعت ساز باشم ساعت ساز میگه که کار جالبیه البته حالا دیگه برای شما کمی دیره میدونین چرا؟ چون زندگی مثل جوانیه یه بار نگاه میکنی و میبینی رفته که رفته مرد متأثر میگه حرفای قریب میزنیم زندگی همین جور داره از دستمون میره و هیچی نمیفهمیم. ساعت ساز میگه هر روز هم به یه چیز تازه سرگرم میشیم. مرد میگه بدون اینکه خودمون بخوایم. ساعت ساز میگه بله قربون. اصلا نمیدونیم برای چی زنده ایم. چی چیکار می‌خوایم بکنیم؟ صبح رو شب می‌کنیم و شب رو صبح. مرد میگه در نهایت سادگی زندگی می‌کنیم و هیچ توقعی از کسی نداریم. ساعت ساز میگه آدم باید چشمش رو باز کنه زندگی و دست کم نگیره. مرد میگه به قول فرمایش شما یک بار اسرائیل میاد سراغ آدم. ساعت ساز با تعجب میگه من مرد میگه شما فرمودین ساعت ساز میگه چی؟ مرد میگه که آدمیزاد باید خیر داشته باشه اینا ساعت ساز میگه من؟ مرد میگه نه خیر آدمیزاد ساعت ساز میگه یعنی من آادیزاد نیستم مرد میگه. چه حرفا شما که فرشته این قربون منظورم اینه که هر آدمی زادی باید اینجوری باشه ساعت ساز میگه صحیح میفرمایین ولی نمیشه که اینا رو بل کنم و برم مرد میگه نه اصلا صلاح نیست این روزا قارتگرا ما رو محاصره کردن اتفاقا باید بیشتر مراقب باشیم ساعت ساز میگه که مردم گرسنند و احساس ناامنی میکنن مرد میگه اما قارتگرا گرسنه نیستن ساعت ساز میگه پس چرا قارت میکنن مرد میگه منم میخوام همین از شما بپرسم راستی چرا دیگه چیزی برامون نمونده ساعت ساز میگه راستش تمام افزون طلبی همیشه بشریت رو به خطر انداخته مرد میگه مثلا شما که این همه ساعت عتیق از طلا و نقره گرفته تا ساعت‌های ارزون قیمت دارین دیگه چی میخواین ساعت ساز میگه چی میخوام معلومه ب... ب... آدمیزاد و ولع مرد میگه شما و ولع ساعت ساعتساز میگه معلومه هر آدمی یه ولعی داره مثلا ولای من اینه که برم توی مغازه برادرم و اون ساعتهایی رو که داره و من ندارم بردارم مرد میگه دارین با من شوخی میکنین یا شاید هم دارین سر به سرم میذارین. راستی راستی شما چنین کاری رو ساعت ساعتساز میگه من؟ من آدمی هم که به قول پدرم از زور سادگی گایی به خریت میفتم این فانتزی منه که مثلا آلا مرد میگه این فکر پسندیده نیست. ساعت ساز میگه من تا به حال حتی یک نون هم بی اجازه از جایی بر نداشتم. میدونین چرا؟ چون جان یه نون دزدی به 19 سال حبس محکوم شد. از اون زمان که من بچه بودم و کتاب بینوایان رو خوندم، تصمیم گرفتم هرگز دزدی نکنم. تا با حال باور کنید آزارم به مورچه هم نرسیده. مرد میگه برای چی باید اصلا مورچه رو آزار داد؟ ساعت ساز میگه به قول سعدی من آزار موری که دانه که اینا. مرد میگه خب مسخره نیست یعنی چی؟ این سعدی هم حالش خراب بوده بودا نمیفهمم یعنی آدم را بیفته و یه مرچه بدبخت بدبختو بگیره و آزارش بده این چه فرهنگی آخه چرا اصلا شما باید به این فکر کنین که مورچه رو باید آزار داد ساعت ساز میگه ولی من چنین فکری نکردم مرد با لبخند میگه من که میدونم شما شریفترین ترین روی زمین هستین اما میخوام بدونم چرا توضیح میدین اصلا به چه کسی مربوطه من داشم راجب ولع با شما حرف میزدم که ممکنه خطر آفرین باشه ساعت ساز میگه یعنی چه خطری؟ مرد میگه وقتی مسیح با آسمون میرفت، ملائک توی هر طبقه آسمون سوالایی ازش میکردن و میذاشتن که بره بالاتر. توی طبقه چهارم ام دیدن زیر یقه کتش یه سوزن و نخ جاساز کرده. بهش گفتن آقای مسیح این چیه؟ گفت سوزن و نخ که اگه یه جایی لباسام پاره شد بتونم بدوزمش. بهش گفتن تو نمیتونی بری طبقه هفتم م همینجا میمونی تا بفهمی که آدم گنده ای هست. مثلا پیغمبری کسی که داره میره عرش خدا سوزن و نخ با خودش ور نمیداره که بلکه فقط به خدا فکر میکنه. میبینین که ولع مسیح بدجوری کار دستش داد. ساعت میگه شما باید یه جامعه شناس روحانی باشید. مرد میگه روحانی؟ منو روحانیت؟ ساعت میگه پس قاضی هستین؟ مرد میگه قاضی؟ نه نه. ساعت میگه پلیسین؟ مرد میگه نه. دیگه خیلی دور شدیم. ساعت میگه خب نویسنده این. مرد میگه نه نه. الهوش بودم. مرد یه چرخ ملایم میزنه و میگه من فلسفه خوندم. منتها ریش و سیبیل و موی مخصوص فیلسوفا رو ندارم. عینک تستکانی هم نمیزنم. شاگردای من همیشه میگن آقا شما آدم شناس هستین. اما میدونین چرا؟ من تاریخ شناس هستم. جغرافیای گرسنگی و جغرافیای طبیعی هم تدریس میکنم فلسفهی دارم در باب جغرافی های اقتصادی به عقیده من در یک جامعه گرسنه اقتصاددان ها از نوابق دهرن ساعتساز میگه عالی بود، بسیار حرف متینی بود مرد میگه ما مثل شم سوختیم آقا به قول حافظ شرح این قصه مگر شم برارد به زبان ساعتساز میگه اما مثل این که وقت زیادی داریم میدونین چرا؟ چون با این وضعی که مردم از صبح تا شب میدوند دو شیفته سه شیفته و اصلا به هیچ کارشون نمیرسن شما خوشبختانه سر صبر رو با خیال راحت مرد تو حرف ساعت ساز میپره و میگه شما خیال میکنین که وقتم رو تلف میکنم؟ نه؟ اشتباه میکنین؟ من همینطور که با شما حرف میزنم یاد یاد میگیرم؟ من اصولا هرچی دارم از مردم دارم الان در همین لحظات که دارم با شما حرف میزنم علاوه بر تماشای این ساعت در حال های عظیمی هستم که روح منو به طلاطم میندازه و منو از خودم بیخود میکنه ساعت ساز میپرسه که چرا اصلا عضو هضم نمیشین میدونین چرا چون شما با این دانشتون میتونین حتی دبیر کل شین مرد میگه بدبختی من اینجاست که زیادی احساساتیم گاهی میرم سراغ گولوگیا گاهی میزنم به صنایه روزگار گاهی وقتا هم میافتم به فرهنگ و کتاب حالا هم دلم اسیر ساعت و زمان و عقربه و اینا شد این کلکسیون قشنگی که شما اینجا درست کردین شاید شما بفهمین که من الان چه احساسی دارم ساعت ساز میگه خب شما میتونین اینا رو برای خودتون بخرین مرد میگه ای آقا مگه یه استاد یا فیلسوف چقدر درآمد داره که بتونه چیزی بخره دلم میخواد صاحب این چیزا باشم و کنارشون زندگی کنم اما حتی یکی از اینا رو هم نمیتونم بخرم این قیمتا این که نوشتین بذارین ببینم ام ام بله من باید 31 سال دیگه زندگی کنم و یه چیز مهمی و هر روز از برنامه غذاییم حذف کنم تا فقط بتونم این یه دونه رو بخرم ساعت ساز میگه که بدبختی اینجاست به کمم قانه نیستین میدونین چرا چون اون ساعت طلای سویسی مال دو قرن پیشه یه نگاهی به مرد میکنه و میپرسه شما عتیقه جمع میکنید مرد میگه نه الان فقط ساعت دوست دارم نه آثار باستانی دوست دارم نه آثار هنری نه ثروت‌های کلان و نه چیزای دیگه فقط ساعت چرا شاید از وقتی ساعت یادگاری پدر بزرگم رو پیدا کردم شاید راستی شما نمیدونین چرا ساعت ساز میگه که چون وقت تلاست. مرد روی پاشنه پا میشرخ و میگه آفرین ساعت ساز با حالت بچه‌گانه‌ای میخنده و میگه خب آقای عزیز شما که اینقدر ساعت دوست دارین پس چرا رفتین جغرافیای گرسنگی خوندی؟ چرا ساعت ساز نشدین؟ مرد میگه اشتباه، مسیر عوضی، چه میدونم؟ ساعتساز میگه آدمیزاد عیبش اینه که مدام اشتباه میکنه و میگه تجربه است. مرد میگه واقعا، آدم تا دم مرگ اشتباه میکنه و بعد میگه که یه تجربه دیگن به تجربیاتم اضافه شد. ساعت ساعتساز میگه بعضی خیال میکنن زندگی تکرار تجربه های قلط. صدای سازای بادی از دور، صدای هوهوی باد از دور، صدای جیغی زن در لابلای صداها میپیچه. مرد میگه برای همینه شما با بقیه توفیر دارید. ارز کردم امروز تصمیم داشتم مغازه شما رو ببینم. یادی از خاطرات بعدم یه ساعت نفیس ارزون از شما بگیرم. ساعت ساز میگه که یادتون باشه هیچ گرونی بی حکمت نیست، هیچ ارزونی هم بی علت نیست. اینو همیشه پدربزرگم میگفت. مرد میگه چه نقض و پرمغز. ببینین من اگه یه ساعت نفیس ارزون بخوام کار باید بکنم ساعت ساز میگه حالا دیگه با هم دوست شدیم با مرد دست میده و بعد میگه که نمیتونم جنس بنجل دست شما بدم مرد میگه شما از اولم انسان شریفی بودین اون سال که از یاد من نرفته ولی دوست عزیز حساب حساب و کاکا برادر هر چقدر پول بدم همون قدر راش درسته یه خورده میخندم با با و بعد میرن سر انتخاب هر دو به طرف ویترین خم میشن و با ساعت ها ور میره نه آره نه این چهطور فلان آ که ساعت ساز میگه من آدم شوخ هستم. راستی شما کیف پول امرایتون هست؟ یعنی جانمونده؟ میدونین چرا؟ چون بعضی انتخاب میکنن و بعد میبینن که پول امرایشون نیست یا مثلا کیفشون رو جا گذاشتن یا هر چی. مرد دستشو به جیبش میبره و کیفشو روی پیشخان میذاره و میگه شوخی میفرمایید. ببینین من بی پول نیستم اما مقتصدم. جغرافی های گرسنگی به من میگه که هی مواظب باش. ساعت ساز چشماش برق میزنه و میگه شما هم یه دوست خوب هستین، هم یه مشتری خوشمشرب. بهتون تخفیف خواهم داد. مرد خوشحال میشه و میگه من گاهی از جلوی مغازه شما رد میشم. تابلوی مغازه شما همیشه به من چشمک میزنه. بعد فکر میکنم پس از اون همه سال چقدر جالبه که شما رو دوباره میبینم. مرد میزنه به تخته. بعد میگه که چشم نخورین. تکون نخوردین بلکه کمی هم جوان‌تر شدین میدونین وقتی به شما نگاه میکنم با خودم میگم انگار های ساعت شما برعکس چرخیده ساعت ساز با شوق میگه اختیار دارین حالا دیگه موهام هم سفید شده نوادار شدم من تا به خاطر علاقه به ها شکست و فرتوت نشدم من شغل ساعت سازی رو دوست دارم مرد میگه معلومه از اسم قشنگی که روی مغازتون گذاشتین پیداست ساعت ساز میگه زمان مرد میگه زمان یعنی خود ساعت یا به قول دوستان خود جنس اصل جنس ساعت ساز میگه توی همین میدون بالایی ساعت سازی هست که اسم مغازاشو گذاشته ساعت سازی درست کار مرد پوزخند میزنه و میگه درست کار دلالا باید اسم محل کارشون رو بزنن درست کار که راحتتر بتونن رنگ خر کنن چقد دلالی رونق گرفته از دلالی مواد خوراکی بگیرین تا دلالی خدا ساعت ساز میگه اسم مغازه ساعتسازی پدرم ابتکار بود اما برادرم اسم مغازشو گذاشت تلاش مرد پوسخند میزنه و میگه چه ربطی به ساعت سازی داره بیشتر میخوره بهش اسم یه باشگاه ورزشی باشه ساعت ساز میگه همینو بگو مرد میگه راستی چرا دخترش سر نیست شد ساعت ساز میگه هیچکی نمیدونه شاید انتخاب خودش بود مرد میگه انتخاب بزرگترین هنر بشره اشاره میکنه به ساعت لنگری میگه این یه انتخاب هنرمندان است. دست های خودشو میبوسه. اینکه من اینجا رو انتخاب کردم از خودم ممنونم. مرد همراه آونگ گردن میزنه و سرشو این طرف و اون طرف مثل آونگ ساعت تکم میده. ساعت ساز آهنگی و زمزمه میکنه. دستاشو به حالت والس باز میکنه و می مرد میگه تیک تاک تیک تاک. سرشم هم همینجوری داره تکم میده. تیک تاک تیک تاک بی ساعت ساعتساز میگه لابو چشمتون رو گرفته مرد میگه نه نه چون نه پولم کفاف میده نه دلم میاد از اینجا تکونش بدم ساعت ساعتساز میگه مسئله این نیست اگه مرد میپره وسط حرفاش و میگه نه داشتم فکر میکردم که میدونی چه بازی قشنگی میشه با این ساعت رو انداخت ساعتساز میگه چطور؟ مرد میگه ببینین من و شما مثلا یه قرار میذاریم که یکی از ما همگام با آونگ ساعت گردن بزنیم اینجوری مثلا 10 دقیقه حالا طرف مقابل باید سعی کنه که نظم آونگ زدنش رو به هم بریزه ساعت ساز میگه ولی این کار بیفاید است مرد میگه میتونه بی هم نباشه ساعت ساز میگه مثلا برای من چه فایده ای داره مرد میگه به تجربهش میارزه هر کس برنده یه ساعت میگیره ساعت ساز میگه حالا گیرین من برنده شدم شما ساعت از کجا میارین به من بدین مرد دوباره کیف پولشو در میاره و میگه من که گفتم با تمامون وجود در خدمتم. ساعت ساز میگه پس من گردم میزنم. شما ناظر باشین. یه ساعت از ویترین بیرون میاره و میگه اینم ساعت. البته زیاد هم گرون نیست. اون ساعتی که از ویترین بیرون آورد منظورش این بود که اگر به بازه اون ساعت رو مثلا به مرد بده. مرد با نگاهی به ساعت میگه بدم نیست هم فال هم تماشا شروع کنیم. ساعتساز روی چارپایه میشینه و همراه با آونگ گردن میزنه و میگه چرا شما ناظر باشین مرد میگه خب خودتون خواستین ساعتساز میگه میخواستم شما رو امتحان کنم مرد میگه بعد از این همه رفاقت هنوز اعتماد ندارین. اونم به من کف دستاشو نشون میده دار و ندارم این دستای تمیزه ساعتساز میگه شوخی کردم به دل نگیرید مرد میگه خب چیکار کنیم بالاخره شما گردن میزنین یا من بزنم ساز میگه شما بزنیم. شروع کنیم. مرد میگه شروع کنیم. صدای شعارای نامفهوم و صدای سازای بادی باز شنیده میشه. مرد روی چارپایهی کنار پیشخان میشینه و با پاندول ساعت لنگری تمرکز میگیره. همراه با پاندول گردن میزنه. ساعت 12 و پنجاه دقیقه است. ساز میگه تا سر ساعت یک. مرد میگه سر ساعت یک بازی تمومه. شروع میکنه ساعت ساز میگه ببینین اتفاقا سر ساعت یک زنگ قشنگی هم میزنه مرد در حال گردن زدن میگه بله می دو نم ساعت ساز میگه فکر میکنین من چاقترم یا شما مرد سکوت میکنه ساعت ساز به زمین نگاه میکنه و میگه این پول از کیف شما افتاده مرد سکوت میکنه ساعت ساز میگه ای وای پلیس مرد خونسرد میگه پلیس هیچ وقت با من کاری نداره همچنان گردم میزنه ساعت ساز یه پتک پلاستیکی برمیداره نزدیک مرد نیسته و میگه الان با این پتک میکوبم به فرق سر شما یک دو سه دستشو بالا میبره اما نمیزنه مرد میگه نه ترسین تر سین من نمیرن جم پنج دقیقه از وقت گذشته ساعتساز با حیجان دنبال چیز تازهای میگرده بالاخره یا پاش پلاستیکی پیدا میکنه و با اون دو بار صورت مرد رو خیس میکنه ساعتساز میگه آب نشونه روشناییه عصبانی نشین مرد میگه دست شما درد نکنه خنک شدم ساعت ساز از کشوی میزش ساعت نفیس برمیداره و میگه یادم رفته بود این ساعت قیمتی رو به شما نشون بدم. تماما تلاست. قطب نمام هست. زنگم میزنه. صدای زنگش آدم رو میکنه. می کنار مرد نیسته. ساعت رو یه دفعه بالا میاره. ببینین. مرد میگه بعدن. بعدن. ساعت ساز سرگشته لحظهی در میان وسایلش جستجو میکنه و عاقبت یه سیخ بلند پیدا میکنه. ساعت ساز میگه نکنه می‌خوین بگین بازیو بردین یا مثلا می‌خواید بگید آدم با هستین اما منم بیکار نیستم که زمان بگذره تازه نصف وقت گذشته نقطه ضعف شما رو هم پیدا میکنم. میدونین شما م... به این حساسیت ندارین در همین حال سیخو به طرف چشم مرد میبره. مرد میگه نه نه نه ساعت ساز میگه پس به چی حساسیت دارین؟ مرد میگه هیچ چی. ساعت ساز میگه نه این منصفانه نیست. دارم ساعت نازنینم اون میبازم. از صبح تا حالا هیچ معامله هم نکردم. ساعتم میبازم. خیلی غم انگیزه. برادر احمق من، برادر احمق من. اگه بدون چه سرگرمیای مسخکی تو این دنیاس، هیچ وقت نمیره لابلای چرخ دنده ها رو تلف کنه. میبینین؟ به شما هشدار میدم بس میگه 5 دقیقه صبر کنین ساعت میگه این آقا با شما کار داره مرد میگه نه نه نه ساعت ساز سیخو به کمر مرد فرو میکنه و میگه حالا حالتونو جا میارم چطور بود مرد میگه خیلی خوب بود ساعتساز سیخ سیخو به گردن مرد فرو میکنه اما مرد آرام و جدی همچنان گردن میزنه ساعت میپرسه حالا چطور مرد میگه خوبه خوب ساعت ساز سیخ و جوری روی صورت مرد میگیره که اگه سرش رو بده فرو میره ساعت ساز میگه اگه سیخو همین طور دارم میره توی صورتتونا مرد میگه هر کار دوست دارین بکنین سیخ توی صورت مرد فرو میره ساعت ساز میگه ای وای زخمی شدین صبر کنین پاکش کنم مرد در حالی که از روی صورتش خون جاری شده میگه نه لازم نیست ساعت ساعتساز میگه مثل اینکه دو دقیقه بیشتر وقت نداریم برا مهم نیست ولی اگه زخم شما چرک کنه شما را از پا در میاره مرد میگه مهم نیست ساعت ساعتساز میگه قبول دارم بازیو بردین بس کنین مرد میگه لحظه نهایی نزدیکه ساعتساز و عصبانیت میگه شما از سنگین با مشت محکم به سر مرد میکوبه بمیرین ساعت آهنگ بسیار قشنگی می نوازه و یه ضربه می زنه. مرد خوشحال از جا بلند میشه، خندون کنار آینه میره و به زخمش نگاه می کنه. ساعتساز داره از خشم لرزه. مرد میگه این زخم از شما به یادگار دارم. ساعت از روی میز بر می داره و به جیب جلیقش آویزون می کنه. همون ساعتی که ساعت ساز برای این شرطی که بستن، از توی کشو آورده بود. مرد میگه یه زخم و یه ساعت از شما برام به یادگار میمونه. ساعت ساز در حالی که خودشو کنترل میکنه میگه منو ببخشین من به شما زخم زدم. مرد میگه مهم نیست یادگاریه. مرد ساعتشو بر میداره جلوی پیشخون دستشو به طرف ساعت ساز دراز میکنه. ساعت ساز متحیر نمیدونه باید چه تصمیم بگیره. مرد میگه امیدوارم بازم شما رو ببینم. ساعت ساز میگه اینجوری که نمیشه شما مرد میگه بازم به شما سر میزنم. بعد به سمت در میره ساعت ساز میگه ولی من میدونین سعی میکنه که مردو از رفتن پشیمون کنه مرد میگه باید برم ساعت ساز میگه ولی من بازی یه و قبول ندارم شما یه ساعت بردین و دارین میرین به همین سادگی مرد میگه یادتون باشه با یه ساعت و یه زخم دارم میرم ساعت ساز میگه صبر کنین بذارین منم شانسمو امتحان کنم مرد بهش جواب میده که نیازی نیست شانس تو امتحان کنی. شما آدم خوششانسی هستین. اقبالتون بلنده. پشت سرتون رو نگاه کنین. این همه ثروت، این همه طلا و چیزای ارزشمند مال شماست. ساعت دستش رو در بازوی مرد میندازه و میگه: میخوام شانسمو، میخوام قدرتمو آزمایش کنم. بیاین. یه فرصتم به من بدین. مرد میگه باید جایی برم. اگه دیرم نمیشود باور کنید ساعت ساز میگه ده دقیقه که چیزی نیست ساعت ساز مردم میکشه و میگه بیاین. بیاین ده دقیقه که هیچی نمیشه. به من فرصت بدین. بذارین منم شانسم امتحان کنم. بعد روی چارپای میشین. مرد میگه فقط یه بار. قبوله ساعت ساز میگه بله فقط یه بار. مرد ساکش و زمین میذاره و میگه خیلی خوب شروع کنین. ساعت ساز میگه متشکرم. حالا سر چی؟ مرد میگه هر مبلغی که شما تعیین کنین قبول دارم. ساعت ساز میگه م... سر همون ساعتی که از من بردین. ها؟ مرد میگه باش قبوله اما خیال نمی کنم شما بتونین طاقت بیارین. کار سختیه. میترسم یه ساعت دیگه هم ببازیم. ساعت ساز میگه میخوایین شرط رو دو برابر کنیم. مرد میگه میخوایین سر همه یه ساعت های مغازتون شرط ببندیم. ساعت ساز میگه نه سر دو تا ساعت. مرد میگه براتون نگرانم. مبادا بعدا ناراحت شین یا مثلا گریه کنین. ساعت ساز میگه گریه کنم؟ به خاطر یه ساعت؟ مرد میگه نه. به خاطر سه تا ساعت. ساعت ساز میگه رجز میخونین؟ مرد میگه اینم خب جزء بازیه. ساعت ساز میگه من علاوه بر اینکه اون ساعت از چنگتون در میارم کیفه پولتونم میگیرم. مرد میگه خیلی خوب شروع کنین، ساعت ساز روی چارپایه مرتب میشینه، رو به ساعت خودش آماده میکنه و میگه راستی یادتون باشه، یه وقت به من زخم نزنیم. مرد میگه باش، من دموکراتیک رفتار میکنم، سعی میکنم با حرف فکرتونو منحرف میکنم. شروع کنین، از حالا ده دقیقه. ساعت ساز شروع میکنه به همراه آونگ گردن میزنه. در پی سکوت صدای شعارای نامفهوم و سازای بادی میاد مرد چرخی میزنه بعد به طرف ساعت ساز میره خیره نگاهش میکنه کنار صورتش پخ میکنه اما ساعت ساز به کار خودش ادامه میده بسیار جدی خوشحال و با دقت مرد میگه اون پولا مال شماست بله من اونارو برمیدارم دارید شما آدم محکمی هستین ولی من به هر قیمتی شده باید برندشم خیال کردین خیلی خوب آقای عزیز من کارمو به طور جدی از همین حالا شروع میکنم و اعلام میکنم که میخوام همه مغازاتونو جمع کن مرد ساکشو بر میداره به طرف ویترین میره درشو باز میکنه و ساعتارو رو یکی یکی بر میداره و توی ساک میذاره من فریب نمیخورم من این ساعتهای قدیمی و نازنین رو بر میدارم و توی کیفم هم میذارم. این ساعتهای نقره و طلا رو هم بر میدارم. ساعتساز در سکوت با دقت کردن گردن میزنه. مرد میگه که من این ساعتهای قشنگ و جیبی رو هم برداشتم. حالا شما باید برگردین و مانع این کارم بشین. ساعت ساعتساز میگه شما فکر میکنین. ما توی حزب چی یاد میگیریم. مرد میگه شما در این تمام ثروتتون رو از دست میدین ساعتساز میگه مقاومت سرلوهی ر ماست مرد میگه میدونین چرا برادرتون لای چرخدنده ها دنبال حلقه مفقوده میگرده؟ نه نه نه هیچ فکر نکردین چرا دخترش نه نه نه یه روز این چیزا رو میفهمین یروزی روزی که خیلی دیره من فریب نمی خورم من شما رو فریب دادم برنده اصلی معنم این ساعت نازنین، باور کنین مدت ها بود که برای اینا نقشه کشیدم ساعت ساز میخند و گردم میزنه پنج دقیقه گذشت مرد میگه شما اصلا متوجه نیستین که چه اشتباهی دارید میکنین من شما رو به چیزایی جزی سرگرم کردم که همین ثروت شما رو ببرم اما شما مانه هم نمیشین. حالا وقتش بلنشین و جلومو بگیرین. ساعت ساز میگه من فریب نمی خورم. مرد میگه که من پولای شما رو هم برمیدارم. خب دیگه چی دارین؟ های دیواری. من اون ساعت دیواری ظریفم هم برمیدارم. یه ساعت دیواری از روی دیوار طبیعتم بر میداره و توی ساکش میذاره. حتی از جلوی چشمتون میبرم که شما باور کنید شوخی نمی کنم. ساعت ساز در سکوت و خنده ادامه میده. ه ه ه مرد میگه که من دیگه اینجا کاری ندارم. هنوز دقیقه فرصت دارین اما گردم بزنین و بازی رو ببرین. من میرم. خدا نگهدار دار. مانم بشین. دوست عزیز. خدا حافظ دوست عزیز. مرد در رو باز میکنه. و بین در و داخل مغازه میگه که من دارم میرم و نمیخواین به خودتون بیاین. ساعت ساز در سکوت و خنده ادامه میده و میگه نه،, نه نه نه مرد میگه خدا گهدار دوست عزیز، یک دقیقه در سکوت میگذره و ساعت ساز همچنان به کار خودش ادامه میده. تا چند لحظه دیگه من، پیروز میشم شما میفهمین ساعتساز همچنان گردن میزنه ده دقیقه که به پایان میرسه ساعتساز از شدت حیجان بالا میپره و دستاشو مشت میکنه ساعتساز فریاد میکشه من پیروز شدم من پیروز شدم صداش تو صدای هیاهو و شعار نامفهوم جمعیت تظاهر کننده ها گم میشه صدای سازای بادی میاد. ساعت ساز نگاهی به مغازش میندازه و چیزی جز همون ساعت قدیمی لنگری به دیوار نیست. در مغازه رو باز میکنه. صدای سازای بادی شبیه صدای یک گاوه که دور میشه. در سکوت صدای زوزه باد میاد که شبیه به گریه یک زنه. زنی که از جگر فریاد مرگ میکشه ساعت ساز با گریه میگه که من پیروس شدم چیزی که شنیدید نمایشنامه ی تکپردهی آونگ خاطره های ما اثر زندیاد عباس معروفی بود. این اثر یک نمایشنامه ی ای که همینطور که گفتیم تا حالا اجرا نشده. اشاره به اونصور زمان اتفاقاتی که در حاشیه متن نمایشنامه میفته و البته دو کاراکتر اصلی قصه کاملا نمادین پرداخت شدند که قطعا تحمل برانگیزه. و برای ما البته قابل درکه امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت برده باشید این پادکست بدون کمک همکارانم نمیتونه کارش رو ادامه بده و من از اونها مثل همیشه ممنونم مخصوصا از محمد امین سراب نویسنده متن این قسمت و سینا سعدی تدوینگر این قسمت یاد عباس معروفی رو دوباره گرامی می‌داریم من مهدی خدادادی هستم و شما قسمت بیست پادکست الف رو شنیدید براتون آرزوی روزگاری بهتری دارم این نقش ماند از غلمت یادگار عمر کست.